بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة والزكاة واجبة في أموال النامية إذا كان بالفقراء إلى مثلها حاجة مفرما يدي واجب واجبة در أموال نامية رشد نكون فقراء به اون چیزها به مانند اون چیزها نیازی داشته باشند فمنها از جمله اون چیزها المواشی مواشی هستند بس از جمله این چیزهای نامی که فقرا بهشون نیاز دارند چی هستند مواشی هستند و هی ال ابل وال البقر در مواشی عبارتا از ایبلو و شتر و گاو و غنم و غوسفند البته شروط واجب بودن زکات رو نیاورده بود ولی شروطش اینه که به نصاب برسد خودش میار نصاب دیگه چیه یکی این که یک حال بر اونا بشه مثلا از امروز فرضاً گوسفند از چلتا تا به نصاب رسیده درش زکات واجب میشه از امروز که به چلتا رسیده یه سال رد بشه اینو بشه میگنند حول شرط سه اینه که سائمه باشه در صحرا بچه اکثر حول اگر تو خونه باشه همش غذاش علف داده بشه این دیگه طبق مذهب جمهور زکات نداره مالکیه این شرط سائمه بوده رو نگذاشته ولی در نظر جمهور این شرط هست خب و غالب اموال العرب و این نگه غالب اموال عرب هست و اعزو اموالهم و از عزیزترین اموالشان، منها الابل از جمله اینها ابله پس از این ستا حیوان شطر و گاو و گوسفند درشون زکات هست من ها الابل خب ابتدا میاد زکات شطور رو توضیح میده پس شرط اولین بود که به نصاب برسه از همین تا شرط اولش چی بود و اول نصابه ها خمسون اولین نصاب شطور پنج داره یعنی اگر انسانی چارتا شطور داشت زکات ندارد و فی هشاتو پنج تاشو تور که داشت زکاتش یک گوسفنده. زکاتش یک چیه؟ یه بوزی. ازش زکات میده. خودمون که خوب منته خودمون چی سیاه باشه چون سفیدش بیش میگن گوسفند بیش میگن چی؟ ولی گوسفند واقع اون سفیده رو میگن ولی خودمون هر دو تارو میگیم گوسفند به بلوچی خودمون سیاه پسو اسپ پس, پس میگه خلاصه اول نصابه شطور از 5 تا شروع میشه کمتر از 5 تا زکاتی نداره که به پنج که رسید گوسفندی داده میشه فرقی نمیکنه سفیدو میشه اشبا بوزش ولا زكاة فيما دونها وزكاة نيست در كم ترس بنشته. فإذا بلغت عشرة ففيها شاطن بدحتاك رصيد دتا بوز زكاة مدين. فإذا بلغت خمسة خمس عشرة ففيها ثلاث وشياه هنا واختك ببون زهترسي ستة. فإذا بلغت إثنين ففيها أربع وشياه وقتی که به 20 تا گوسفند رسیدن 4 تا گوسفند فاذا بلغت 25 خب پس تا 20 تا گوسفند میده حالا فرقی نمیکنه چی باز باشه چی گوسفند فاذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض وقتی که به 25 رسید یعنی تعدادش طورا ففیها ابنتو مخاز اینجا دیگه یک بنت مخاز روزقات میده بنت مخاز اون بچه شطوری رو میگند که یک سالش کامل هست و وارد سال دوم شده پس یک بچه شدار مادهی میده که یک سالش کامل هست و وارد سال دوم شده زمانی که تعداد شطورا به بیست سبحانش دارستید فا الم تکن فابن لبون ذکر اگر بنت مخاز موجود نبود اون موقع یک ابن لبون میده ابن لبون دیگه هرشو میگن ابن لبون اون یک دو سالش کامله و وارد ساله سوم شده پس اگر ماده شطور کوچیکی داد بنت مخاز میده و اگر ناری بود ابن لبون میده فإذا بلغت ستن وثلاثين ففيها بنت لبونين زمان كتيداد شطرابي سيو ششتا رسيد در اون يك بنتي لبون واجب ميشي كزكات بده يك بنتي لبون كبنتي لبون وعلن قفتم اون يك دو سال شو كامل شده وارد سي سال شده فإذا بلغت ستن واربعين ففيها حقة زمان كبه چهلو ششتا يك حق واجب ميشي حقه کدومه اونیه که سه سالش کامله و وارد سال چارم شده پس اون ماده شطوری هست که سه سالش یک ماده شطوری میده بچش که سه سالش کامل هست و وارد سال چارم شده فاذا بلغت احدا وستین فا جزعه وقتی که به شستو یکتار رسیدن یک جزعه زکات میده جزعه اونیه که چار سالش کامله و وارد ساله پنجوم شده فا اذا بلغت خوب جذائه هم ماده هست فا بلغت ست و سبعینا ففیها بنتالبون وقتی که به هفتاد و ششتا رسیدن انجا دو بنتالبون میده وقتی که به هفتاد و ششتا رسیدن چند تا بنتالبون میده فا بلغت احدا و تسئین ففیها احقتان وقتی که به نویدو تا رسیدن دو حقه میده الى مئه تا سد و یعنی از نویدو تا همین دو حقه هست مثلا چه 91 داشت چه سد داشت چه صد و داشت دو تا حقه میده فاذا بلغت مئة و و ففی ثلاث و بنات لبون وقتی که به تعداد به سد رسید اینجا دیگه سه بنت لبون زکات میده ثمه فی کلی اربعینه بنت لبونه سپس از هر از اینجای کار به بعد از هر چلتا یکی بنت لبون میده باله و فی 50 حقه و از هر تا یک حقه میده. مثلا به عنوان مثال شخصی شتور داره، از هر میتونی یک بده. تقسیم بر چل. پنج. 5 تا تلبون بده. یا حقه بده. از هر تا یک حقه میده دیگه نه؟ از این حساب به بعد از هر تا یک و از هر تا یک حقه متوجه شدی؟ مثلا تقسیمش میکنی دیگه یکی تا داشت چند تا؟ تا شطور خب دویست میخواد از تا اگر بده دویست تقسیم بر چل میشه پنج پنج تا بعد بنتلبون بده اگر میخواد از پنجه تا بده دویست چند تا پنجاهی میشه 4 تا پنجاهی میشه دویست خب اینجا 4 تا حقه میده اگه میخواد از تا بده از هر پنجه تا یک میده تا دویست میشه دیگه این چیز ساده یه خب این با زکات شطور بود باب زکات البقر باب زکات گاف و اول البقری ثلاثونه اولین نصاب گاف سی تای. شخصی سی گاف داشت زکات میده با، و فیها طبیعون ذکر ته اون حال بودن و سااحه بودنش در نظر گرفته میشه اون که حال بگذره خب. و اول اونصابق باقر سلحولله اولین حساب شطور گاو سیت های وفی طبیع اندده کرد که از سیتا گاو یک طبیع میده، یک چی طبیع اون گای رو میگند که گساال ای رو میگند که یک سالش کامل هست، و وارد سال دوم شده یک سالش کامل هست و وارد سال دوم شده پس از سیتا گاو یک طبیع میده ذکر یعنی منظور نر ولا زکات فی مادونه ها و در کمتر از سیتا زکاةی است. شافه میگن فی مادونه ها این فی مادونه ها خب بریم جلوتر فاذا فا بالغت 40 ففيها مسننه الف زمانيك گاوا با 40 تا رسیدن به چندتا؟ یک مسننه ماده میده مسننه کودونه مسننه اون که دو سالش کامل شده و وارد سال سوم شده مال گاف خیلی ساده است از سیتا یک تبی میده از 40 تا یک مسننه میده حالا ببین اگر یکی شست تا داشت دوتا تبی میده اگر یکی هشتات تا داشت دوتا موسیل نمیده سی و چل با هم چند تا میشند هفتات اگه یکی هفتات تا داشت یک تبی میده و یک موسیل نمیده دیگه کاش که کتابا تا همینجا میگفت ادامش نمیداد چون مردم ریاضی بلا داد اومده ادامش داده میگه فا اگه بلغت سبعينة، فإذا بلغت ستين ففيها تبيان، شستاشدان دو تبي مدة، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبي، هفتاطك شدان يك مسنة فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنات، هشطاطك رسيدان دو مسنة مدة، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتباع، نو الطاق شدان ستة تبي مدة، فإذا بلغت مئة ففيها مسینتون و رسید یک مسنه و دوتا تا خب چرا چون 100 تا رو ما میگیریم 40 تاش یه مسنه بده میمونه 60 تا دیگه 60 تا هم کیش كشت... چه نیاز داره دو تا دیگه نیاز داره چون 60 از دو تشکیل شده خیلی ساده است فاذا بلغت 110 ففيها مسنه ثاني و طبي سد تحتكر رصيدا دون مسنه و یک طبي بلغت 120 اما موسینات و اربعات و اتمیه زمانی که سدو رسیدن اختیار داره میتونه سمسینا بده یعنی چون سدو سه میشه چلی تا چلی و چار تا سیی میشه یا تا موسینا نمیده یا چار تا میده فان این احدهما فيها اخذ فان این أحدهما فيها أخذ وإن وجد معا أخذ أفضلهما بالف فإن وجد فيهما خبالي فإن فإن وجد أحدهما فيها أخف مغيك اختيار داش مسسة دبISTA درس دبISTA ميتونى ست مصنّب جري ميتونى شارطة تبي بجري ميجي كي فإن وجد أحدهما فيها أخف أجر يك أزيناه موجود بود مثلا فقط مسنه نداشت طرف نه. یا فقط طبیع داشت اون یکی رو برمیداره منظور مسنه ها رو برمیداره اگر طبیع بود طبیع ها رو برمیداره و این وجیده معن اخذ افضل هما اما اگر در اون هم طبیعه بود و هم مسنه بود هر کدومی که افضل بود اونو چکار میکنه برمیداره و کذالک الابل ازجتم آفیه ها فرزان و همچنین شطور زمانی که در اون دوتا فرز جمع شد یعنی مثلا از میان حقه جزعه بنت لبون اینا مثلا طرف اختیار داشت که بنت لبون بده و مثلا اونو اختیار داره که کدومو مثل همین برخورد میشه باشه پس شطور هم مثل گاوه اگه تا فرض که جمع شد اگر فقط یکی بود مثلا مسلم نبود یا بنتلبون بود بنتلبونا رو برمیداره اگر دو تا هر دو تا موجود بودن در شطراش اونی که افزل تره اونی ربا ملجوامیس البقر میگه گاو میش جزوه گاو میشه پیوند داده میشه به چی؟ به گاو و البخاتی الالعراب و شطر بختی شطر قوی درازگردان میگن پیوند داده میشه به شطر خوبه عربی چون بخاطی شطوری رو دورگی رو میگن که از عجمی و عربی خب خلاصه بابو زکات الغنم. باب زکات غنم پس مال شطور خوندیم مالش سخت بود از گاف حالا گاف دیگه ساده هست بابو زکات الغنم. باب زکات گسفند اولونی صاحب نصاب من الغنم 40 اولین النصاب گزفن از چلتا شروع میشه و فیهاشاتون که درش یک بوزی زکات میده گفتم بین میش و بوز فرقی نیست زکاتشون باهم. با همه و زکات فی مدونه همه ما و در کمتر از چلتا زکاتی نیست ببین یک مسئله هست بهش میگن اوقاس اوقاس بین دو فرض رو مثلا اولین فرض شطر پنج بود که یک گسفن میداد دومیش ده بود که دو تا میداد حالا یکی هفت تا داد دیگه نداره تا ده تا برسه اینو بگن اوقاس اینو میگن چی در اوقاس فقه ها میگن زکات وجود نداره جز در احناف بین خودشون اختلافی هست که امام ابو هنیفر رحمت الله علم میگه در اوقاس گاو و شطور زکاة هست خب ولکه قول جمهور فقها اکثر فقها همینه که در اوقاس زکاتی نیست و اذا بلغت مئتا و احدا زمانی که به صد رسید اون دو تا زکات میده پس اگر یکی 80 تا داشت همون یک گوسفند دیگه زکاتش اینو بهش میگن اوقاس اگه یکی 100 تا داشت همون یک تای 121 که شد میشه دو فاذا بلغت 200 شات و شات ف فيها ثلاثه زمانی که یک تا شدند فاذا بلغت 100 شات و شات ف فيها زمانی که تا رسیدن میشن تا باید زکات بده فاذا بلغت 400 ففيها ففی ها اربع وشیه بچار سته که رسید میگه تا بده ثم فی کل مئت شاعتن زائدتن شاعتن سپس میگه بل از هر ستایی که میاد که یکی بالا بود میشه یکی یعنی از 400 به بالا مثلا تا دا داشت همینجوری 50 یعنی هر 100 تایی که به 400 اضافه میشه اون موقع یکی هم میشه بله ثم کل مئتی شاعتن زاعدتن سپس در هر 100 گسفند اضافی شاتن. يك غوسفانتي ميشه زكاة نه بس از 400 400 از 500 تا بإن شكل از هر 100 تايي كه اضافه ميشه يك يك زك يك غوسفندي ها ويضم الى المعص bale ميگه الضأن مش پيوند بوس وليس فيما بين الفرزين شيء در بین دو فرض زکاتی نیست که همون اوقاسه مثلا یکی چل تا داشت یکی داره بعد نصاب بعدیش میشه از 121 دیگه نه بین چل تا 121 دیگه زکات نیست همون یکیه همون نمیشه ما بیایم عقلی بگیم خب هشتات شدن دو تا بده آه ولا زكاة في شيء من المواشي وإن بلغت نصابا حتى تكون صائمتا وعليها ويحول عليها الحول بالي إنجا شرط شنو ذكر كرده ميجي نيست در مواشي عجر تشكي بالنصاب هم رسيدة حتى تكون صائمتا تا إنك صائمة باشند يعني اكثر حول شريدة باشند در صحراء ويحول عليها الحول و شرط بعدی اینه که حال برش بگذاره امروز اومد شخص چل تا گوسفند داشت یا پنج تا شطور داشت یا سی تا گاف داشت نصاب کامل شده ولی امروز که دیگه زکات برش فرض نمیشه سال بعدی همین موقع سال بعدی پس ست شرط یک نساب دو سائمه بودن سه گذر حول فان این علفت او لم تستکمل حولن فلا زکات فيها میگه اگر معلوف باشن اون دام ها مواشی یا حول حالا این که یک روز طرف برده باشه مثلا الف داده باشه دیگه نمیتونه میگه من نمیدم. نمیدام حاله فانو اولیفت اگر الف داده شد منظور اکثر او حول اولم لم تستکمل حولا یا حول کامل نشده بود فلا زکات فيها درشون زکات نیست و یجوزو تعجیلوها قبل حولها و جایزه زود دادن زکات قبل از حول طرف اختیار داره بسید یک ماه مونده مثلا بعد از فرزن زکاتش مثلا آخر شواله الان رمضانه آیا میتون زکات بده بله و یجوزو تأجیلها تأجیلوها قبل حولها و جایزه تأجیلش قبل از خب بازی جا من حرکاتو خاطر چی اجتماع میخونم چون ذهن بیشتر روی مسائله بعدا که خودم گوش میدن متوجه میشن که بعضی جه ها حرکتهای ایرابی اشتباه شده و الخلطه او فی النصابی یوزکون زکات الوحیدی اونایی که در نصاب با هم شریکند زکات یک نفر رو میدن مثلا چطوری؟ من و شما با هم هشتات تا گزفن داریم خب اینجوری نیست که یکی من بدم یکی شما با هم و تزكى السخال و تزكى السخال بحول الأمهات إذا نتجت قبل الحول ولو بيوم و زكاة داد دا مشي السخال على يا بوزغال فرقي نمي كونه با مادران مادرانشون اذا نتجت قبل الحول ولو بیومن زمانی که قبل حول به دنیا بیاد اگر چه که هم یک روز قبل از حول باشه مثلا دیگه بله. اینا جزء مادران حساب میشند بله با بال اون روزی که مثلا اومدن حول رسید اینا دیگهش حساب میشن. ولو این دو روز پیش یک روز پیش به دنیا آمده باشه این شد از زکات مواشی که با همش خوندیم شطر و گاو و گسفن